بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به اندازه مهربان نهایت باره فلفلامیم راه اینها آیات کتاب آسمانی است و آنچه از پروردگارت و تو نازل شده حق است ولیکن اکثر مردم ایمان نمی خداوند آن ذات است که آسمانها را بدون ستونی که شما آن را ببینید بلند کرد و آنگاه بر برعش مستولی شد و آفتاب و ماه را رام کرد همه چیزها زمانی معین به مسیر خود حرکت دارند همه کارها را تدبیر می کند آیات خود را تفصیل وار بیان می کند تا باشد که شما به ملاقات پروردگار خود یقین کنید و اوست که زمین را گسترد و در آن کوه های استوار را قرار داد و نیز رودبارها را و از تمام میوه ها در آنها دو جفت فرید شب را روز می پوشاند. بیگمان در اینها آیات است برای قومی که تفکر می ورسند. و در زمین قطعات متفاوتی در کنار هم قرار دارند و باغهای انگور و کشتزارها و نخستانهای خرما که بعضی از یک تنه رستند و برخی هم از تنه های جداگانه از یک آب آبیاری می شوند برخی را بر برخی در طعم میوه برتری می دهیم حقا که در این آیات است برای مردمی که از عقل خودکار می گیرند اگر تو از چیز تعجب می کنی پس این گفتارشان عجیب است که می آیا ما وقتی که خاک شویم واقعا در آفرینش جدیدی خواهیم بود یعنی دوباره زنده خواهیم شد همینهایند که بر پروردگار خود کافر شدند و آنها یوغهای عثارت است بر گردنشان و ایشان اهل آتشند در آنجا همیشه سر می برند و پیش از نیکی بدیر را از تو به شتاب طلبند و بگمان پیش از ایشان نیز مثالهای از این و ها گذشته است حقا که پروردگار تو برای مردم با وجود ستمگاری ایشان صاحب آموزش است و بگمان پروردگار تو سخت عذاب کننده است کافران میگویند چرا بر وی نشانه از پروردگارش نازل نشد ولی تو بیگمان ای و برای هر قوم هدایت کننده است خدا آنچه را رحم هر انسان یا حیوان ماده بر و نیز آنچه را در دوره معین حمل می و آنچه را بر آن می می‌داند و هر چیز نزد او با مقدار معین است اوست دانای پنهان و آشکارا و اوست بزرگ و بلند مرتبه برای او یکسان است خواه کسی از شما راز را پنهان دارد یا آن را آشکار سازد و کسی که خود را در شب پنهان کند یا در روز به گونه آشکارا براهش دوام دهد. برای انسان نگهبانانی اند که پیاپی پی از پیش پس پشت او را به حکم خدا نگه می دارند بگمان خداوند حالت هیچ قومی را تا وقت تغییر نمی دهد که ایشان خود را تغییر ندهند و چون خدا به قومی به را بخواهد از آن بازدارندهی نیست و نه هم برای ایشان جز او کارسازی است اوست که با شما برخ را برای ترس یا امید می نمایاند و عبرهای گران را ایجاد می کند و رد او را به پاکی ستایش می کند و نیز فرشتگان از حیبت او و اوست که سایتها را می فرستد پس به هر که بخواهد با وسیله آن آسیب می رساند با این هم در باره خدا جدال می کنند در حالی که او در نهایت تدبیر و نیر و مندیست دعای برحق یعنی مقرون به اجابت از آن اوست. و کسانی که جز او چیزهای دیگری را می خانند دعایشان را به هیچ وجه اجابت نمی کنند ایشان به گونه کسی اند که کفهای خود را به سوی آب می گشاید، تا به دهن او برسد ولی هرگز آن آب به دهن او رسیدنی نیست و نمی باشد دعای کافران مگر در گمراهی و هر چیزی که در آسمان ها و زمین اند به خدا سجده می کنند به خوشی یا ناخوشی و نیسایه هایشان صبحگاهان و شامگاهان بگو کیست پروردگار آسمان ها و زمین بگو خدا بگو آیا شما جز او دوستانی یعنی معبودانی گرفتی که برای خیشتن مالک نفی و ضرری نیستند، بگو آیا نابینا و بینای اکسان شدن توانند؟ یا آیا تاریکی ها و نور برابرند؟ آیا چنان شریکانی به خدا قرار دادند که مانند آفرینش او بیافرینند؟ آفرینند؟ به ای که این آفرینش بر ایشان مشتبه شده باشد؟ بگو خداوند آفریننده همه چیز هاست و اوست یک تا و بیشار غالب؟ آب را از آسمان فرو فرستاد و از درهاب اندازه ظرفیت آنها آب جاری شد پس سیلاب کف رو و تزاید را برداشت و از آن چه برای تهیه زینت آلات یا ابزار به کوره آتش میاندازند، در آنها نیز کف است مانند آن این چنین خداوند برای حق و باطل مثال می آورد اما کفها بیرون خشکیده می روند ولی آنچه با مردم سود می پس در زمین میماند. این چنین خداوند مثال می زند. برای آنانی که حکم پروردگار خود را اجابت کردند، سرانجام نیکوست اما آنانی که فرمان او را اجابت نکردند، اگر تمام آنچه در زمین است و همانند آن از آنشان باشد و آن را در بدل نجات خود فدیه بدهند و نمیشود. نمی شود. برای آنها حساب بدی است و جایشان دوزخ است و چی بد جایی؟ آیا کسی که می داند با تو از جانب پرودگارت نازل شده حق است مانند است که نابیناست بیگمان خیراتمندان پند میگیرند. گیرند آنانی که به عهد خدا وفا می کنند و آن پیمان استوار را نمیشکنند. آنانی که چیزهایی را که خدا به پیوستگی آن فرمان داده است وحصل می کنند و از پروردگار خیش می ترسند و از بدی حساب بیم دارند و آنانی که برای آوردن خوشنودی پروردگار خیش شکی بایی ورزیدند و نماز را با تمام و کمال برپا داشتند و از آنچه ایشان را روزی داده پنهان و آشکارا خرش کردند و آنانی که با کی بدی را دفع می کنند ایشانند که عقبت نیک آن سرای از آنشان است باهای جودان در آن داخل می شوند و نیز آنانی که صالحند از پدران همسران و اولادشان فرشتگان بر ایشان از هر دروازه داخل می شوند و می گویند سلام بر شما خاطر صبر و استقامت شما از چینی کوست جزای آن سرای؟ و آنهایی که پیمان خدا را بعد از استوری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند همین که به ایشان لعنت است و برایشان بدی به دی سرای آخرت است خدا روزی را به هر که می خواهد فراخ می سازد و یا تنگ می نماید و کافران به زندگی دنیا شاد شدند در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت نیست مگر متای مرچید کافران می گویند چرا از نزد پروردگارش بر او یعنی پیامبر نشانه نازل نشد بگو بیگمان خداوند هر کرا بخواهد گمراه میسازد و هر کرا که که به او رجوع کرد به سوی خیش رحیاب می گردارد. آنانی که ایمان آوردند و دل‌هایشان به ذکر خدا آرامش می‌یابد. هان و ذکر خدا دل‌ها آرامش مییابد. آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند برایشان زندگی خوشایند است و نیز بهترین سرانجام. این چنین ترا در میان قوم فرستادیم که پیش از آن نیز قومهای دیگر گذاشتند تا آنچه را به تو وحی کردیم بر ایشان بخانی در حالی که ایشان از خدای رحمان منکر می شوند. بگو او پروردگار من است معبود جز او نیست بر او توکل کردم و بازگشتم سوی اوست اگر قرآنی می بود که به آن کوه‌ها به حرکت می افتادن یا به آن زمین قطقتم می شود. یا به آن مردگان سخن می باز هم ایمان نمی آوردند، اما هر کار از آن خداست آیا مؤمنان نومید نشدن یعنی به این یقین حاصل نکردند که اگر خدا میخواست همه مردم را رهیاب میگردنی و کافران با سبب کارهایی که انجام داده اند همیشه مورد مصائب کوبنده قرار میگیرند یا این مصائب به نزدیک خانه ایشان فرود میاید تا اینکه وعده خدا هر است که خدا وعده خود را خلاف نمی کند و بیگمان پیانبرانی پیش از تو نیستم از خور شدن پس به کافران مهلت دادم سپس ایشان را گرفتار کردم پس دیدی که عقوبت من چی گونه بود؟ آیا ذاتی که بر هر کس به آنچه کرده مراقب است هم تایی داشته می تواند ولی با این هم به خدا شریکانی می آورند. بگو آنها را نام ببرید آیا شما او را به چیز خبر می دهید که به زم شما او در زمین نمی داند؟ یا با سخنان ظاهری فرفته شده اما با کافران فرفیبشان خوب جلوه داده شده است و از راه خدا باز داشته شده اند و هر کی را خدا گمراه کند پس برای او رهنمایی نیست برای ایشان در زندگی دنیا عذاب است و بیگمان عذاب آخرت سختر است و برای ایشان در برابر خدا بازدارنده وند نیست مثال جنتی که به پرهیزگاران وعده شده است در زیر درختان آن بارها جریان دارد میوه آن آن همیشهیست و نیز سایه آن چه این سرانجام پرهیزگاران و سرانجام کافران آتش است و آنهایی که بر ایشان کتاب دادیم به آنچه به تو نازل شده شاد می شوند اما از گروه ها کسانی اند که برخی از آن را تکذیب می کنند بگو بگو به من امر شده تا خدا را پرستش کنم و به او شریک نیاورم به سوی او دعوت می کنم و به سوی او بازگشت همگان است و به همین گونه آن را به حیث فرمانی به زبان عربی نازل کردیم و بعد از اینکه برای تو از علم آمده است اگر از هوش های ایشان پیروی کنی با تو از جانب خدا و نگهبانی نیست بیگمان پیامبرانی را پیش از تو نیز فرستادی و به ایشان زنان و فرزندان دادید هیچ پیامبری نبوده که جز به فرمان خدا نشانه ای بیاورد برای هر دوره کتابیست خدا هرچی را می نابود می سازد و هرچی را می خواهد اثبات می کند و نزد اوست ام کتاب یعنی اصل کتاب خواه پاره از آنچه را به ایشان وعده کردیم ایم به تو نشان دهیم یا پیش از بجا شدن این وعده تو را بمیانیم پس بیگمان رساندن پیام خداوند بر توست و حساب اعمال بر ماست آیا نمی بینند که ما به این زمین توری رسیدگی می کنیم که به تدریج از اطراف آن کم می سازیم و خدا فرمان می دهد کسی رد کننده حکم او نیست و او در حساب گرفتن سریست و بیگمان پیشین یا نیز دستی چیدند پس تدبیر همه جانبه از آن خداست هر کسی هر کاری را که انجام می دهد او تعالی می داند. و کافران به زودی می دانند که سرانجام کوی سرای آخرت از آنی کیست؟ کافران می تو پیامبر نیستی بگو خدا و حیث گواه میان من و شما بسنده است و نیز کسی که نزد او علم کتاب است